داستان دو برادر صبح یه روز گرم دو برادر برای شکار از دهکده بیرون اومدن هر کدوم یه تیر و کمون برداشتن و یه کیسه چرمی که امیدوار بودن موقع برگشتن به خونه اون از پوست شکار پر کنن اونا مدتها توی جاده شنی بین هزارها راه رفتن گاهی یه مار کوچیک یا بزرگ جلوی پای اونها می خسید. گاییم پرندهی وحشت زده جیخ کشان به پرواز در بعد از مدتی دو تا برادر به یه راهی رسیدن که پر از بوته های خار و تخت سنگ بود. جایی که فقط شکارچیا از اون می زشتن. ناگهان چشمشون به ردیفی از ظرفای سوفالی افتاد که روی زمین، پشت سر همو به صورت وارونه چیده شده بود. برادر کوچکتر پرسید: "این دیگه چیه؟ چه چی کسی این ظرفها رو در این جای دور افتاده گذاشته. برادر بزرگتر با التماس گفت: به اونا دست نزن، من حتی میترسم به اونا نگاه کنم. احساس میکنم این ظرفا ها بهتر از اینجا بریم. برادر کوچیکتر که شجاعتر بود، حرف برادرش رو قبول نکرد و گفت تو هرچی میخوای بگو ولی من میخوام زیر این ظرفا رو نگاه کنم. برادر بزرگتر وقتی دید که برادر کوچیکش خم شده تا ظرفا رو برگردونه، وحشت زده از اون فاصله گرفت و از دور تماشا کرد. پسر ظرف اول رو برگردوند. زیر اون چیزی نبود. ظرف دوم رو هم برگردوند. اما زیر اونم چیزی نبود. چند ظرف دیگه را هم برگردوند اما هیچ سهر و جادویی تو اونا نبود. ولی همین که ظرف آخر رو برگردوند، یه فریادی از تعجب کشید. از زیر اون ظرف یه پیرزن کوچیکی بیرون اومد. پیرزن بدون اینکه به پسر کوچیک توجهی کنه، رو به پسر بزرگتر رفت و گفت: همونجا مثل یه آهوی وحشت زده نلرز. دنبال من بیا تا چیزی رو به تو نشون بدم که ارزش دیدنش رو داره. پسر که وحشت کرده بود نتونست قدم از قدم برداره. پیرزن فریاد زد. بزده. بعد رو به پسر کچکتر کرد و به اون دستور داد تا دنبالش بره. پسر کچکتر که ماجراجو بود بلا فاصله دنبال زن راه افتاد. حرفیم نزد. ناگهان زن رو به روی درخت بزرگی ایستاد و تبری رو به دست پسر داد و گفت این درخت رو برای من قطع کن. اما با اولین ضربه تبر گوساله ای از درخت بیرون اومد. بعد هم با هر ضربهی که پسر به درخت میزد گاو گاف، گوساله، بوز یا گوسفندی از اون بیرون می اومد. بالاخره دور تا دور پسر و گله از چار پایان پر کرد. پیرزن رو به پسر کرد و گفت همه این حیوونا مال تو. اونا رو به خونه ببر و از اونا نگهداری کن. پسر اون به زده شده بود که نمیتونست حرفی بزنه. با این حال از زن تشکر کرد. بعد به همراه گلهش به راه افتاد و سراغ برادرش رفت. وقتی برادرش شدید دید به اون گفت نگاه کن، ببین پیرزن به من چه چیزایی داده؟ پیش خودت نمیگی که کاش من دنبال پیرزن رفته بودم؟ بعد تمام ماجرا رو که براش اتفاق افتاده بود از اول تا آخر تعریف کرد. اون وقت گله رو به طرف ده کده به راه انداخت. اون روزا فصل خشک و بی آبی بود. علفا سوخته و قهوهای شده بودن. برادر تشنه بودن، حیوونا هم، گاه و بیگاه بعد از بوییدن زمین ناامیدانه فریادی از تشنگی سر میدادند کمی جلوتر کنار پرتگاهی برادر بزرگتر لحظه ای به یه نقطه خیره موند و ناگهان فریادی کشید و گفت نگاه کن آب آب و با دستش به جوی کوچیکی که بین درختان و علفها برق میزد، اشاره کرد. بعد به برادر کچکترش گفت اگه تنابی دور کمرم ببندی و منو پایین بفرسی میتونم آب بخورم. برادر کچکتر به سرعت به حرف برادرش عمل کرد. وقتی برادر بزرگتر به اندازه کافی آب خورد با خوشحالی به بالای سخره اومد. حالا نوبت برادر کچکتر بود. اون رو به برادر بزرگترش کرد و گفت حالا تو با تناب منو بفرست پایین. برادر بزرگ برادر کچیکتر رو پایین فرستاد تا اونم آب بخوره اما ناگهان یه فکر شیطانی به مغزش رسید. اون میدونست دونست که هیچ راهی برای بالا اومدن از دره وجود نداره. با این فکر تناب ول ول کرد و برادرش رو پایین انداخت. بعد به طرف گله برگشت تا برادرش همونجا تلف بشه. وقتی برادر بزرگتر به خونه رسید، خونه بادش با خوشحالی به اون خوشامد گفتند. پسر به اونا گفت، پیرزن این گله رو به من داد. اونا سراغ برادر کچکتر رو از اون گرفتن، اما اون گفت، مگه به خونه بر اون از سفر خسته شد و گفت میخوام به خونه برگردم. من اونو از ظهر ندیدم. برادر کوچکتر اون شب به خونه بر اما، پدر و مادرش هیچ نگران نشدن. اونا فکر میکردن اون حتماً برای شکار به سمت دیگهی رفته. صبح روز بعد زنای دهکده مشغول کشیدن آب از چاه بودن که صدای آواز مرگ اصلی رو شنیدند. مردم میدونستن که اگه این پرنده رو دنبال کنن و او اونا رو به لونه زنبورا میبره و میتونن از اونجا اصل بردارن. زنا با عجله پیش شوهراشون برگشتن و گفتن عجله کنین ما این اطراف آواز مرغ اصلی رو شنیدیم. دنبالش برید و برای ما اصل بیارید. پدر، پسر و چند تا مرد دیگه به طرف جایی که پرنده مشغول خوندن آواز بود رفتن. اونا به دنبال پرنده لابلای بوته ها شروع به دویدن کردن. اونا فقط زمانی می خستگی در کنن که پرنده روی درختی نشست و خستگی در کرد. وقتی دوباره پرنده شروع به پرواز کرد، اونا هم روی خار و خاشاک شروع به دویدن کردن. مردا اونقدر دور شدند که دیگه نمی دونستن کجا هستن. بالاخره یکی از اونا گفت، بیش از اندازه از خونه دور شدیم. من فکر نمی کنم این پرنده ما رو به اصل برسونه. من که خسته شدم و می خوام به خونه برگردم همین موقع پرنده با صدای بلندتری شروع به سر و صدا کردن و آواز خوندن کرد و بالاشو به شدت به هم زد. مردا تعجب کردن. مردی که پدر پسرا بود گفت به نظر می که پرنده می باز به دنبالش بریم. مرد رفتن و رفتن تا به یه پرتگاه رسیدن. ناگهان صدای ناله ی را شنیدند شنیدن. کمک! کمک! پرنده بالا و پایین پرید. بعد به پایین در پرواز کرد و آروم پیش پایین پسر نشست. پدر خم شد تا ببینه پرنده به کدوم سمت رفته که چشمش به پسرش افتاد و با پیچک های اون طرف تنابی ساختن و پسر رو از پردگاه بالا کشیدند. پسرم تمام ماجراهایی رو که براش پیش اومده بود براشون تعریف کرد پدر با اندو گفت اگه این مرگ اصل ما رو به اینجا نیورده بود حتما تو اینجا تلف می شدی باید برادرتو تنبیه کنم اون به خاطر تمایی که داره تو رو اینجا رها کرد تا بمیری. خبر نجات برادر کچکتر زودتر از خودش به دهکده رسید. به خاطر همین برادر بزرگتر ناپدید شد و دیگه کسی اونو تو دهکده ندید. پسر کچکتر تو کار گلهداری موفق شد و سالهای سال به خوبی و خوشی با خانوادهش زندگی کرد. کانال تلگرامی هزار افسان داستانهای افثانه ای صوتی <موسیقی> نشانی کانال تلگرامی تی نقطه می me مهران دوستی تی م ای, م ای ای آر دی نشانی وبلاگ ما m e h r a n d o s